بیستومین عادت زده تمبلی انگیزه های غیر مستقیم پیدا کنید بهانه ای که از میان می رود. حالش را ندارم همه ما لحظاتی را تجربه کرده ایم که در آنها حال حسلی انجام کاری را نداشته ایم اما آنچه مردمان موفق را از انسانهای عادی متمایز می کند این است که آنها حتی اگر حس حال انجام کاری را نداشته باشند باز هم انجامش می دهند. آنها برای انگیزه پیدا کردن صبر نمی کنند، بلکه ساختار ذهنی سخت خوشی مداوم را دارند. البته این ساختار ذهنی را یک شبه نمی توانید در خودتان ایجاد کنید. این کار پروسهی ای طولانی است که ضمن آن می باییست مرتب تحت تعالیم انگیزه بخش مرتبط با عادتی که می خواهید در خود پرورش دهید قرار بگیرید. ساده ترین راه میانبور شنیدن و دیدن سخنرانی های الهام یا خواندن کتاب هایی با این مضمون است. سخنرانان الهام بخش به شما برای حرکت نیرو میدهند و در شما انگیزش ایجاد می کنند. شما برای گوش دادن به حرف های آنها به وقت آزاد نیازی ندارید. کافی است موقع رانندگی، ورزش کردن و یا انجام کارهای خانه با استفاده از آیپد یا تلفن همراهتان به سخنرانی‌های انگیزشی گوش دهید تا به صورت غیر مستقیم برای همه فعالیت‌های خود انگیزه پیدا کنید. اجرای این عادت اجرای این عادت به صرف اندک هزینه نیاز دارد زیرا که برای دیدن و شنیدن سخنرانی‌ها در هر زمان به وسایل صوتی و تصویری کوچک و همراه نیاز دارید. خرید یک آیپد یا تلفن همراهی با قابلیت پخش این فایل ها برای شما مقداری هزینه در دارد. کتاب های مرتبط با این موضوع را نیز می توانید بخرید یا به امانت بگیرید. کافی است شنیدن و دیدن سخنرانی های الهام بخش را در برنامه روزانه خود قرار دهید. بدین ترتیب همیشه یک منبع انرژی و انگیزه غیر مستقیم در دسترستان دارید که پس از مدتی تکرار ملکه ذهنتان شود. و یک ساختار ذهنی پرانگیزه انگیزه برای کوشی مداوم را در شما به وجود می آورد.